حوزه الله من الشیطان الله اللهم محمد بگو بگو بسم الله الرحمن الرحیم دعایی وقت ختم قرآن بند اللهم محمد قصالتك قصدع بس با امرك و نصحا لعبادتك اللهم اجعل نبيا صلواتك عليه وعلى الهي يوم القيامه اقرب النبيين منك مجلسا وامكنهم من شفاعه وعجلهم عندك قدرا واوجبهم عندك جاه خداوند محمد بنده خود و فرستادت فرست همچنان که رسالت تو را ابلاغ کرد و فرمانت را با صدای رسا بیان کرد و بندگانت را نصیحت کرد خداوند را پیامبر ما را که درودهای تو برو و خاندانش باد توزر از نزدیک نزدیکترین پیانبران در مجلس خود و بلند مرتبه ترین شفاعت کنندگان ایشان و بزرگارترین آنها نزد خود و آبرومندترین آنها نزد خود قرار ده. کرد بسم الله الرحمن الرحيم وبه يمسئنا ما هو خير من بكره ونومين فصلى الله وسلم على اشرف خلقه ومبلغ الرساله حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ابي القاسم محمد صلى الله علی و وعلى آله اكبر هذا حديثي بما الله على العلماء العاملين راسي جماعه امامنا مجموعه که در کتاب شریف صحیفه سجادیه آمده است از امام سجاد علیه السلام با محتوای بسیار خوالا محتویی که شامل روش زندگی مادی، با به مسائل معنوی و راهنمایی این امام همام به سمت سوی زندگی دوگانه زندگی که همراه با دو بوده مادی و معنوی هست زندگی که اصالت رو به معنویات میده و عمر ما رو در راستای زندگی مادی برای کسب معنویات معرفی میکنه، راه گوشایی میکنه، راه میکنه در دعای 42 دوم، یکی از متین ترین عبارات رو حضرت برای ما فرمایش کردن و به خدای متعال عرض کردن خب وقتی که قرآن رو تلاوت میکردن و ختم میکردن در انتهای ختم قرآنشون این دعای دوم رو می‌خوندن. این ظاهر کار ایشون هست از اونجایی که دعا حضرت فرمود مخل عباده هست. اصل عبادته دعا می‌کردن. اما در کنار این دعا و مگاه دعا‌گونه به حضرت حق معارف بلندی رو مطرح میکنند. شاید بشه این دعا رو به دو بخش تقسیم کرد. یه بخشش معرفی کامل یا کاملترین تعریفی که برای ما انسان ها قابل درک کس رو در این دعا قسمت اولش از قرآن آوردن. قرآن در ظاهر یه نوشته هست روی ورق و جمعش که آیاتی از کل منت رو تشکیل میده و جمع اون آیات سوبر رو و های قرآن رو و مجموعش کتابی میشه که بین دو جلده و اسمش قرآن گذاشته شده این ظاهرشه خب این ظاهر مقدسه بدون وزو نمیشه مثلا دست با ناپاکی نمیشه نزدیکی شد و استفاده کرد این ظاهر غزیه است اما در این دعای چل دوبام طوری حضرت تعریف میکنه از قرآن و از اسماء وصفی استفاده میکنه توصیفاتی رو برای قرآن میاره که یه حیات حقیقی کرنه براش قائله در این که نوشته هایی هست، خروفی هست شملاتی داره و یک کتاب رو تشکیل میده اما یه حقیقت حی حاضر و کاملی از قرآن معرفی میکنه مثلا میگه قرآن میتونه حافظ و نگهدار مادی شما باشه از بلاهای آسمانی و زمینی قرآن شما رو حبس کنه خب ظاهرش متن رو نوشته است اما حضرت می‌فرماید در باطن یه وجود حیی قوی داره که میتونه شما رو حفظ کنه. یا داره که مثلا شپا هست. امراض مادی، امراض معنوی همه رو میتونه شفا بده. حتی مرزهای مثلا مادی رو کسایی که خوانه اونس با قرآن رو پیدا کردن میتونن ولی خودشون و دیگران از قرآن شپای امراز و مرزها رو بگیرن نمونه های بودو هست داره که رحمتون یه موجود مهربانیه موجود مهربان یعنی اینکه که میتونه در سایه رحمتش انسان از این مهربانی استفاده کنه به آنچه قدرت و توانمندی داره برای رفع نیاز ها از این متق و این کتاب استفاده کرد یا در توسیپاتش داره که مونسا میتونه در تنهایی و در خلوت و جلبت مونس شما باشه کلماتیه به ظاهر. اما در باطن اگر کسی ارتباط بگیره با قرآن، قرآن میتونه مونس باشه. معمولا ما انسان ها یه آشنایی داریم، یه دوستانی داریم، یه رفقایی داریم که تو میونه این رفقا بعضیشون مونسن بعضیشون میتونن همراه انسان باشن، آدم باشن راحت باشه. دیگران این نباشه که این یه وقت مثلا در دروازی در میره یا یه وقت یک چیزی از من رمزی مثلا چیزی بشنوه و به دیگران خلاصه برسون و آبروی من رو ببره مونست اون کسیه که همیشه همراه آدم میتونه باشه چه ظاهری چه در مثلا باطن مثلا مادرها معمولا مدرایی که بلد هستند هم مهربانی دارن هم حکیمانه برخورد میکنن همیشه همراه بچه ها هستند اگه اجهت های ظاهری و فیزیکی در دو تا شهر زندگی کنند مادر ای جا پرند دیجا چون اونسه با هم زیاد دارندن حال همدیگه رو حس میکنن. میگه می که این بچه حالش خوب نیست و واقعا هم همینطوری مثلا تب کرده. زیاد اتفاقی شما ده. مونس نه تنها همرنگ میشه بلکه وجودشون خیلی نزدیک میشه به قدری که اینکار یه وجود در دو کار بودن، مثلا در دو جسمن قرآن میتونه مونس باشه و این مونس مونس عادی نیست کلام الله نزدیکترین وجود به خدای متعاله. حرف خداست دیگه در معرفی قرآن حضرت معصومین دارند که قرآن نسبت به ما، امامان معصوم، سیغل اکبر یعنی وزانش، کاراییش، بیشتر از وزان ما عیمه هست ما سیغل اصقری، قرآن سیغل اکبر هست خیلی مهمه خب، ما چون حس داریم نسبت به عیمه علیه السلام، انسان بودن. بیشتر حس داریم بهشون داریم قرآن موجودیتش با موجودیت ما انسان ها به ظاهر فرق میکنه غذا خیلی باش اونس نمیگیریم نه تنها اونس نمیگیریم رفیق و دوست هم نیستیم نه تنها دوست نیستیم کاری باش نداریم مثلا نهایتیش مثلا به عنوان کتاب مقدس گاهی قرائت کنیم خیلی کار بزرگی کار انجام دادیم که روزانه چنایی ازش بکنیم. میگم خیلی. الحمدلله خدا توفیق داده میتونیم رو چنایی بکنیم. این دیگه نهایت استفاده است. ولی قرآن میگه من از ائمّم سمرات و خیراتم خیلی بیشتره. یه فرصت بزرگی قرآن برای ما تو دنیا و در زمان حیاتمون میتونیم با استفاده از پرامین امین ائمّالی مسلم که اصلا برای ما و همه امید و تکیه اون به امامان محسوم علیه سلام هست از قرآن بیشتر از اونا ها استفاده کنیم ها. در رفع نیاز های مادی و معنویم یه بخش از دعای چلی دوم به تعریف و معرفی قرآن میفرده هزند که در جای دیگه اینجور عبارات کمتر دیده شده بخش دومش در تعریف از نبی اکرام هست در قالب دعا از رسول خاتم حضرت محمد ابن عبدالله الله صلی الله علیه و آله و سلم به شکلی تعریف میکنه که در همین صیف سجادی دای دومش اصلا دعای به نبی اکرام هست اونجا تعریفات بلندی داره از خاتم اما نه به تعبیر هایی که در دایچه دوبم هست. تعریفشون در دای دوم همین داایی که بهحت شد خیلی تعریف های بلندی است. اینجا یکی دو تا نکته هست که حشه خیلی خوبه یکی شما عرض کنم. در مورد رسول خدا. خب زیاد ما شنیدیم از هزارات محسومین که اشرف مخلوقات از ابتدای آلم تا انتهای عالم ایشون شریفترین و الانترین جایگاه و مقام انسانی رو دارد خلیفه برتر بین خلیفه های الهی هست میدونید مقام خلیفتاللهی برای انسان نیست برای محسومینه این جای론 فل عرض خلیفه در قرآن اینجور نیست که هر انسانی این مقام رو بتونی کسب کنه مختص به معصومینه مثل این میمونه که مثلا در وزارت خونه ای وزیر خلیفه یعنی جانشین وزیر مسافرتی کرده یه دو سه روز نیست مدیر کلیه مثلا جای ریاست یک گوزه و مجموعه نیست میگن خب، خوب کارا برای که روانشته بشه و تعطیل نشه یه از طرفی بذاری، امضا بزنه بیان مثلا آبدارچی رو بزارم بگم آبدارچی تو که هم سابقت خیلی زیاده ظاهرا چند ماه دیگه بازنشست میشه دیگه از همه پرسابقه تری ما بناهی میان و میرن و اینها تو نزدیک سی سال اینجا سابقه دادیم کار را اندازیدم که از خود وزیرم قوی تره هر پرونده گیر می دم تو رو ببینم بیواری سریع امزه رو با چایی اون میگی چایی می و می وزیر الان نیست تو بیا از طرف وزیر امضا کن همه می میگم هم بگم از تو اموحسن بیاد امزه کنه یا سابقش که بیشتر از همه هست یا نه باید اون موابن خود وزیر، موابن اولیش مثلا، موابن واقعیش، اون بیاد از طرفش امضا کنه تا امضاش قابل تأثیر بزاری باشه اینکه خدای متعال می فرماد این جایلونت به لرز خلیفه خبر میدی که قرار من یه موجودی رو خلق کنم در عالم که این که خلیفی من بشه حضرت آدم رو خلق کرد که پیغمبر خدا بود برای خودش و زمان خودش معصوم میتونه خلیفه باشه خب در میان خلاف های الهی که حدود مثلا در 11 هزار سال عمر انسان کنونی از آدم تا کنون میگذره بین اون معصومین، ایشون اشرف محسومینه کاملترین معصوم الهی هست این بزرگوار به خواسته خودش اسمت پیدا نکرد. این جایگاه اسمت اعلی رو نسبت به دیگر معصومین خدای بهش داد. اسمت یعنی پرونده زندگی معصوم هیچ لکی سیاهی نداشته به خواست خدا. حتی اگر مثلا تو زمان بچگیشون میخواستن یه کار معمولی که بچه های دیگه انجام میدادند، خیلی سنگین و رنگین نبود، سقیق بود، دست غیب مانه میشد، مثلا سنگ ها رو جمع میکردن برای اینکه خانه خدا ساخته بشه، تعمیر بشه، در زمان جدشون، ایشون هم وقتی میخواست مثلا معروف در تاریخ، پیرهن عربی رو بالا میگیره، سنگ بذاره و ببره پای کار، مثل دستی رو دستش سر و پیرهن افتاد که مثلا حالا در این حال که بچه بیشتر نبود خدا حفظ می‌کنه اینها رو این اسمت ذاتی اینها هست اکتسابی نیست اسمت توحسمه یه <تصح> قسمت علمی داره اسمت علمی یه قسمتش هم اسمت عملیه اسمت عملی رو غیرمحسومی رو میتونن کسب کنن. یعنی تک تک شما ها میتونه با اختیار اسمت عملی رو پیدا کنید. یعنی اهل گناه نباشه انسان. بعد انقدر تمرین میکنه، عادت میکنه که از گناه بدش میاد. انقدر تمرین میکنه که اصلا خیال گناه به ذهنش نمیاد. میشه یه کار بدی اصلا به خیال انسان نیاد. خیلی کار هست که ما اصلا خیلی زشت به خیالمون هم نمیاد، به خیال هیچ انسان نید. مثلا خوردن خوردن مثلا فوزولات مثلا آشخالایی که زبرده که مدتی ریخته بوی گندش همه رو همه فضال رو گرفته. به ذهن آدم میزنید یه لغمه از این بخورید. به ذهن نمیزنه میشه انسان با تمرین یه تنفر نسبت به گناه پیدا کنه بعد این تنپاری دیگه محرم میشه اصلاً از ذهنش درخواست و میل بیه همشین گناهی پیش نمیاد در ازال تمرین این میشه معصوم اولیه خدا اختیاراً میتونن معصوم بشن منطقه اسمت عملی اسمت علمی هیچ کس بدونه بدون خواست خدا که فقط برای این معصومین و چهار در معصوم پاک ما هست هیچ کس نمیتونه کس کنه خطا نمی کنی. در دریافتهاش خطا نمی کنه لذا ما کلام معصوم رو حجت می دونیم به خاطر اینکه خطا نپذیره عملشون هم سنت می دونیم و حجت می دونیم چون در عملشون خطا لا نمیشه اصلا خب یه همچین موجودی رو مخ امام سجاد سلام الله علیه میاد میگه که خدایا اولا این بزرگوار پیامبر خاتم ابد توست اللهم صل علی محمد ابدک و رسولک چون یکی از مسئولیت بزرگش اینه که رسول توست کنش تو کردی واسطه شده بین شما و مخلوقات کما بللغ رسالتک و صد عب امریک و نس عبادک عباده خارش این بود که تو رو تو رو نصیحت میکرد به خیل خوبی ها. بعد عرض میکنه خدایا اللهم اجعل نبی ینا سلاواتو که علیه و علی آله یه القيامة مل قیامت اقربا نبیی من که مجلسا روز قیامت این رو نزدیک نبی خودت به خودت قرار بده یا داره و امکن هم مین شفاعت امکان شفاعت رو از دیگر پیامبران به ایشون بیشتر بده و اجل هم که قدر و منزلتش رو از, دیگر از دیگران بیان، نزد خود والاته رو اعلای بردیگران قرار بده و اوجه هم اندکه جاهن یک کار کن اون جایگاه و مقامش نزد تو پراترین باشه مگه نیست خاتم انبیا بوده دیگه اون چیزی که این دو آخره جامعه ترینه کامل ترینه. این درخواست یعنی چی؟ که حضرت داره درخواست میکنه توجیهش چیه؟ اینا که دارا هستند، دارای این جایگاه هستند، دارای این مقام و منزلت هستند، یه امام معصوم داره به ماها یاد میده که اینجوری از خدا بخواهیم. حالا بعض یه بفتر مثلا منباب قدردانی است، ما داریم با زبان بیزبانی از خدا تشکر میکنیم، که ما هم معتقدیم ایشون حوالاترین منزلت شپاعتش بالاترین جایگاهش بالاترینه. اینجوری توجیح کردم. ولی توجیحشی نیست مثل که حالا، این یه نکته که این داها یعنی فراتر از اون چی که خدا میخواسته رو ما درخواست میکنیم فراتر از اون چی که دارا بودند و خدا بهشون داده بود می‌خوایم. این اصلا جایزه یا اینکه نکته و پلسفی دیگه ای داره باید یه سوال تر باید داشته باشیم برای اینکه به اون سال دوم این سال تو جلسات بعد برسیم این هستش که خدا که این عالم رو خلق کرده همه‌ی الزامات همه‌ی چیزایی که لازم داره رو حتماً در نظر گرفته چون خدای حکیمه هر چیزی رو به اندازه به جا به موقع خلق کرده و قرار داده <تصفيق> از جمله چیزهایی که خلق کرده، ما انسانهاییم گفته شماها نسبت به دیگر موجوداتی که خلق کردم اشرف از اون هستید خلقت دون به طور مادی معنوی، روحی فراتر از موجوداتی دیگه است خب، وقتی ما رو خلق کرده نیازهای ما رو هم می دونسته دیگه همه رو پرامم کرده پس این دعاها چیه؟ اصلا درخواست یعنی چی؟ پدر مدر که بچه ای رو به دنیا میارن از هر جهت نیازهاش رو برطرف میکنن دیگه چه نیازی داره اون فرزند بیاد مثلا هر روز صبح می بسم الله الرحمن الرحیم بابا جان ما درزان من این چیزا رو تا شب که میخوام بخوابم ام احتیاج دارم لطفا این رو تأمین کن، لازم نیست سخت به بالا سر، سرمایهش، گرمایش هر چی که نیازه معمول هست تا تو خونه هست این برش جور میکنن خدا اون پدرها و مادرایی که از دنیا رفتن خدا همهشون رو غریب رحمت کنه، اونهایی که ما رو قردار نشون کنه پس دیگه نیاز به دعا برای چی؟ ببینید من مختصر به کوتاه ارز کنم زیاده نگم خستتون کنم نیازهایی که ما داریم دو گونه هست یه نیازهای حتمی هست که تکوینی بهش میگن اونو خدا تامین کرده چه ما بخوایم چه نخواهیم مثل پدر مادر بچه ای که که هست اون نیاز های ابتدایی مثل لباس، غذا مسکن، سرمایش گرمایش نیاز های ابتدایی و ضروری رو پدر مادر چه بچه بخواد چه نخواد براش جور کرده یه نیازهایم هم هست که اختیاریه، نحوه تأمینش اختیاریه هست عقل داده، ذهنیت داده توامندی داده خدا بگه خودت برو کسب کن متاع یه راه هم برای کسب کارت من هستم اگر از من بخوای، من بهت میزم نخواستی برو خودت تامین کن میگه بابا جان تو ما رو خرق کردید اجاب هم بکنیم نه در مورد اون نیاز های اختیاری اونی طلب کن از من از تجب از ت ولی اگه درخواست نکردی دیگه اجابت بر من راض نیست. میگه کی این جابت رو ورتون لازم کرد میگه خودم سنت من، سنت هایی داره خدای مال یکیش اینه در مورد نیاز های اختیاری میگه. اگر خواستی، نعوذ بالله هستم. ما مخلصی کنیم. اینجوری دیگه بابا مدران همینطور میگه هم. ببین، من همه اون چرا لازمه درس خوندن تو و رشد تو هست رو من در خدمت هم. ولی فراتر از اون رو، دیگه من نمیتونم اجبار کنم. اگر خواستی من هستم تا آخرش. ولی اگر نخواستی ها بروحکت رو میخوای من اون پدر که من اون کاری که مثلا باید میکردم کم نداشتم دو تا کارم خیلی دقیق داشتم یکی چشمم به ناموس نباشه دستم به مال کسی حالوده نشه دیگه از این به بره هر کاری مخواهد میکنیم من پا و لغت به گور برای شما ها نمیزنم حالوده میگفت که حالا الان مستان میخواد بره خوزه میخواد بره دانشگاه میکنم من مخلوصشم اگه بخواد من هستنم ولی اگه میخواد سر خود کاری بکنه، برو هر درکس روی میخواد بخواد بخواد اصابونی <تصفح> <تصفح> میشوند الله صلی اللهم حمد <مازم> معال <مازم> محمد <مازم> <مازم> <مازم> <مازم> خدا همین رفته کن <بانور> و رحمت <الحمد> فلسفه ی دعا این هست در امور اختیاری راه هایی داریم ما متکیب عقل ما میتونیم تکیه کنیم بریم جلو ولی تامین نیاز های اختیاری یه راه هم رفع نیاز از جانب خدای متعال هست که ایشون میگه از منم بخوای من مثل مسائل تکوینهی که داریم هوا و نیاز های طبیعی که من خلقه کردم اجابت میکنم آقای نیجونی میگه نمک آاشم هم, هم از تو مخواهم بخواه میگه میخرم اما تو دست ماهیشو بده تو نمک خوب به من بده چون تو جور کن جوری من مسیرم یک مسیری باشی که برای نیازهای اولیه و خیلی جزئیمم هم متکی به تو بگی باشی وقت تو چی کار میکنی؟ همه کارات رو انجام بدم تمبل نمیشی؟ میگه نه نم. منم در راستای حرکت به سمت تو از این استفاده میکنم بگی باشی همه چی تو جور میکنم تا دعای اول صحیفه داره که بنای این آلم رو من خلق کردم، انسانها رو هم خلق کردم هر آنشی که لازم داره در اختیارشون میزارن ولی به شرط اینکه به سمت سوی من و برای نزدیکی برن قدم بردارم اگه این نیت رو بکنیم میگی من هر چی بخوایی حاضر میکنم میگیم حتی پولمون، رزقیمون میگه رزقتون نه کمش میکنه نه زیاد. نمیذارم هیچ کس دست بزنه، نه کمش کنه، نه زیادتر کنه که مغرور بشه از کار می‌فتی. اون مقدار که لازم داری می‌دهد، می‌دهد، واقعا، می‌دهد، ها، امتحان کن. میگه این اصلا، انگار نه زن مثلا، نه بچه، نه خش، همش دیگه به همان می‌دهد. پس،, پس از گردان خودش می‌دهد، اول خدا چی کار انجام بده؟ این هم دیوانه نه دیوانه، این هم آقلترین میگه ببین یه خالق مدرین قدرتش قادر نیست. این قدرت همه همین چیزها دستیشه. از جهت مهربانی از مادر مهربانتره. از جهت حکمت و تعقل مثل مادرها احساسی عمل نمی کنه. یک زیاد بده پرتبه، حکیمه. قدر رو قسنگ میدونه چه نیازی، چقدر چه, چه زمانی باید تعمیم بشه. و که داره جابر جبران کننده است و اصطفاتی من به این تکیه میکنم به این میخوام نزدیک بشم این کارهایی که دارم انجام میدم کارهای معنوی یا دنیایی فردی اجتماعی کار آمون منفع دینی اینا رو همش همه نمیخوام برای دیگران کار کنم اول برای خودم کنم وسیله میشه ولی نزدیکی به ایشون بگو من تأمین میکنم ورزخ و منحیس و, و احتساب رزق تا یه جایی می که به ذهنت نمی زنه با برای سخته ها اما خداستی که خدا گفته خدا را قصر می‌دیم به حق خودش به همه انبیای گرامه شعیمه محصومی سامون و علیه مجمعی به ما توفیر بده در راه تقربش که این راه فقط منحصرا در صراط مستقیمش قرار ده و اون راه مستقیمش هم راه بندگیه و دیگه تو تقواست و تقوا هم بجز دوری از گناه فرار از گناه چیزی نیست توفیق نیازد کنه به برکت سلوات بر محمد و آل محمد جلو رستو <متحدث> ناست الله صلنا له محمد وعوه محمد. <متحدث> <متحدث> خب اموزه‌مون چم هست و توی تو؟ این مثلا معصوم اقرار به یا این